اوض من رجیب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و رسول الله و و و بس درباره باره بود و تا یک مقداری متعرض روایاتی که در مسئله شده البته استیاب نشد چون واقعا خیلی زیاده و نکات مهم می داره. ارس کنم که یک نکته دیگری هم که حالا چند از نکات با ما تصریح ما سبق بشه یک نکتی که از بحثه سابب گذشت اینجا به استان ما هم تقرامین نوشته جلو رفید در کتاب محروم شیخ همچون پیروز بود این روایت سباه ابن هندی هنگی رو ایشون در این کتابش از کتاب ترجل محموم نرکرده کرده سیدن و تاووز و در کتاب رو به اصناد المتصلفی ان رایان ابن سر که اگه هم یادتون باشه مقاسب مرگوم شش همین ریان ابن سرطون اونی که الان هست در کتاب نجاشی ریانه ابن شدیده در کتاب نجاشی الان اینطوره طوره از کردن این مطلب رو مرگوم نجاشی در دو عنوان رو بردن. یکی به عنوان سباهب نسر هندی که لهو مسائل رضا علیه السلام یکی به عنوان ریان ابن شدید یکی هر کتاب یکی هر و در هم اولی هم در دومیشون ریان ابن شبیب داره که به عنوان دایی معتصم بوده از کریم زواهر عبارت نجاشین است که ریان ابن سلط یک نفره و اون هم از اشائره قوم اشعری قومی است. اما ریان ابن شبیب این دایی معتصم یا معمول حالا یکی از این از کلم هر دو برادر هم. از طرف پره بچه ها ها مادراتون مختلفه و مادر هر دو هم کنیزه یعنی قوم ولده هم مادر محتسم و هم مادر مهمون و این شخص از بغداد میره همراه مهمون در خراسان اونجا در مرد به اعتبالی که حضرت رضا ولی احبودت خدمت حضرت میرسیده خب داییه یا خلیفه بوده یا داییه دو تا. بعد هم ایشان در قوم آمده برای قومی ها ها جمعه از مطالبی رو که در خراسان خدمت حضرت زبوده نقل کرده این اسمش در کتاب نجاشی ریان ابن شبیب آمده اما در این کتاب ریان ابن سلط آمده ظاهر عباد نجاشی می است که ریان ابن سلط از اشعری های قومه از اگر این مطلب درست باشه اصولا ریان ابن سلط عرب اسیله یعنی از اشعره است. یمن یا اصله اما اونی که داری معتصم یا معمونه این باید قاعدتا برده باشه چون که برده رو خود. چون مسلمه که خوارش مولده ده. زاهن خودشم همونجا باز باشه بعیلی که خودش مثلا خول باشه برادرشم خوارش بزن کنیز باشه لذا این با اون کاملا فرق میکنه اما در این کتاب مرمون سیدون تابوس اسمش ریانتن سرط آمده که بگه واقعا ما یعنی متحیرین صاحبا من هم هنوز متحیرم که این چه کارش بکنه این ریان ابن سر و در که تو به رجالی یه محجم نگاه بکنید یا اینا یه دو تا قصه در کشی راجی به ریان به اصطلاح سرد داره که ریان ابن میه برای میه من فرستان برای خراسات اونجا هم باید ریان ابن شبیه باشه اون شخص هم اون قومی نیست اون شخص هم همین است که دایی خلیفه هست یا دایین خلیفه یا داییون خلیفه علایه حاله انصاف قضیه تا حالا ما اونطور نقل میکردیم به خاطر ظاهر عبارت مرحوم نجاشی رضوان الله تعالی لیکن ظاهرن ابحام داره قصه کاملا خود من اونم فرحان داریم چون در بعض از عبارات ریادم نسلت دایی خلیفه است. منم حالا نگید برم خود منم بیشم با زهرته مراجعه کردم به مسادر. فعلا که نفرم میدیم. حالا مگر توی خطی خدی مخصوطات نفاعثی که اهل سنت در یک تاریخی اسمی این پیدا بشه و الله فعلا خود من با مشکل رو برو که این واقعا ریان ابن سلط خلیفه یا ریان ابن شبید. این هنوز برای ما واضح نیست و از اجایب کار این است که این ریان ابن این ریانی که دایه خلیفه است کسر یه بنامه علی داره علی ابن ریان که این هم از روبات اصحاب ماست ممنون نجاشی اسمیشون رو مرده نجاشی میشه علیه ابن ریان ابن سرط اشعری القومی نجاشی این رو علی رو نسبت داده به اون اشعری قومی لیکن در کتاب مقتضا بالاسر در این نصحی که علیش پیدا شده مقتضا بالاسر ممنون ابن عیاش رضان الله خیاله علیه جعروره عبی و کان خال عجیبه این؟, این هم یعنی به جایی که مشکل حل بشه در اون پسر اشکال برای من هنوز روز یعنی چون من در بحثای قبلا بین این دوتا فرق می‌ذشیم یکی رو رو می‌ذیشی یکی رو هم دایمه متصدم الان با این مسادری که پیدا شده تعمل میکنه و تعمل طبعاً مستند نجاشی بود دیگه علمی اقوی بگه این تفرقه را نجاشی بودشه و بعد در, در یک مشکل یک روایت است که صدوق هم آورده نجاشی هم بو اشاره داره میگه ان ریال امن و قال و فی بعد این نسخ ریال نصر این واقعا بزو... یک ابهام عجیبی اولا اینکه دعای معتصمه کدومی که ما نفهمید یا رعیان ابن ست هنوز نفر نفهمید و بعدش هم آیا رعیان ابن ست مستقلا از اشائر قوم وجود داشته یا اشتباه شده با این آقا با این آقا اشتباه شده با این شهر اون هم هنوز برای من خیلی روشن این که خود این دعای خلیفه هم واقعا شیعه بوده دوره خلافت علی حضرت رضا ولی اهل در وسط اونجا با عنوان ولی عهد با حضرت برخورد کرد صحبت روز بعد از روز برای شیعه ها نه اثر شیعه خوشحال میشه یک شبهه است که خودش هم شیعه شیعه نباشه چون با این دیگه ارتباط اونطور یک قصه با امام جواد داره اما خیلی انسان احساس نمیکنه که اصلا ارتباط اونطوری با شیعه دلار شده حالا یا از اون تقیه میگیره یا دایره خلافت تقیه و هر حال من این مطلب می‌خوام توضیح بدم اگر آراج خودش خودشون برای همین چیز سازی پیدا کنم خبر بده فعلا بنده برم شبه شد مثلا همین روایت واحد رو در کتاب نجشاو بده ریاض الشویب اینجا داره ایروسل همین نسخه ای که در اختیار سنتابوس بوده و توضیح هم دادیم که همین نسخه ای اختیار سنتابوسه دو تا راوی داره دو تا راوی به عین هما هم توی عنوان ثباهب نست آنه هم تو اونا ریانه بشهبیب کاملا واضح نسخ بحرانیه کاملا یعنی هیت جایی شو نداره تمام این ستا یعنی اونی که نجاجی در ریانه شبیب داره اونی که نجاجی در ثباهب نست داره اونی که اینجا سیدم تاوست داره از کتاب ثباهب نست اینا از مستر شخصی به نام احمد بن محمد بن ج... لاهق از یا زکره و لولویه از این آقا ریان پس مستر قطعا یکیه در دو مورد نجاشی و یه مورد این کتاب مستر قطعا یکی چوبه دریجه داریم لیکن در اینجا ریانه نسرت آمده در اون دوتا ریان میشوی بیوانده نمیفهم منم نمیفهم نمیفهم بیوانده این چون تازه برای ما شد ما تحالا خوش بودیم به عباس نجاشی که ما بود به عباس نیست و مخصوصا وقتی در مختصر اثر دیدیم دیگه خیلی قصه تعجب آور چون مختصر اثر ابن عیاش استاد نجاشیه است در اصل ایشانه اونجا تصریح داره علی بن ریار بن سعد انعی و خان خال المعتصم اونجا حالا و خود نجاشی علی بن ریار بن سعد میشه اشعری قومی نمیشه واسه واقعا متهیل هم تدری هم داره هم تفسیر ابهام پیدا کرده حالا یه بحث خیلی دیگ بود پسران برن افحام پیدا کردی یا پسردائی خلیفه بغدان اون هم الان برای ما روشن نید اوزایی خیلی هم برای من واقعا هر جوابه بود چون ما اعتقاد خوب شدیدی به مرحوم نجاشی در دا داشتیم اما این ظاهرا خیلی از خراب کرده این این این عبارت مرحوم نجاشی اعتماده این بسیار بسیار کار مشکلی. چیا؟ کیام ابن عیاد در کتاب مختصر اول این کتاب اونجایی که من میگم بعد بزرگوار بزرگوار مائجلالی آیاشانزه جلالی توی این تراسنا چاپ شده، مستقلاً چاپ شده، نسخه اش از این نسخه چاپ کرده. نایده بودم من پیش اسپیشل نسخه رو. دیدم ایشون یه علیه نریانه نسد ان و وكان خال الماتس. اینم خیلی عجیبه اینم مشکل خیلی زیاد شد چون من دیرکردم گفتم از اول بگیم چون حالا دیروز یه تصور می‌کردیم با این مصادیقی که پیش اومده این تفکرات و تصورات ما اوضاع به کردیم تا من اولو رد خدای من راهی رو پیدا بکنی که این اصل درست چیه این راجع به این کتاب چون دیروز در بحث مکاسب عبارات مکاسبی که خوندید من اشتباه و یادم مثلا من گفتم اشتباهه صحیح و یادم شبیه بعد شما گفتید نه آقا اصل شب می‌گیم مثلا چیه اون نظرش یه جور نوشته ابن تابوس از کتاب که نقل کرده یه جور نوشته به مجموعه کتابات مثلا در رجال کشی یه قصه از ریانه مسرد قطعاً اون خالد معتسمه اتصمه مثلا مذهب اشعری نمی میگه من در بغداد بودم و فرض من فرستاد دو خراسان مثلا میگه که جاسوس بشه مثلا فرض بس برای اینطوریه مراقب با و کارهای مأمون و عجز رضا باشه در رو و هر حال میگیم که احتمال دلیل فعلا در ما امر این شخص روشن نیست که اصلا اسمش ریان ابن شبیبه یا ریان ابن آیا دو نفرم اصلا یک نفرم یا دایی معتصر یا دایی معمونه اون جناب آقایی که مثلا برانه اشعری نیست وجود نداره نه خودش نه پسره که از اشتباهات مثلا نجاشی باشه نمیزونم الان همه اینهایی که گفتم محتمله تمام این وجودی که از کدر محتمله و, و اهل من در لالو بعد داد خبر دیشب من دوست دارم یه موضوع زیر راحت میگوشم ولی نشون می‌دم اون دیشب نرسیدن حال بکنم. اگر آن هر کدوم بعد خبرش رو مهربان کنیم. اینجا به این مطلب یه مطلب دیگری بود. دیروز من در تیم روزهای گذشته مجموعه روايات رو خوندیم. روايات رو هم از که انتخاب بندی یه تاریخه بسیار بسیار منفیش مسلراست بود. اهل مندیمو کالکانه و سایه ولار، اهل مندیمو معلون بلاواظه قرنوجون فارس به الاخری یه طایفه منها نظرات نجوم یه طایفه مطلقات است این چیز به مطلقات به نظر ما ثابت نمیشه که خود تابع دیگریو کلامی ببینید این روایات شما از کل همین همشون به لحاظ سندی گیر داره اگه از آن خود رو بذارین با خوبه هر آدمی که میگه گفتید نیست من خیلی و بزرگان حدیث هم در استودان اینجور بودن نسبت جعل و وضع بسیار سنگینه. این از دران آدش مکنید. ما ممکن است یک حدیث بگیم ضعیفه. اما ضعیف بودن یه چیز مجعول بودن و موضوع بودن چیز دیگری. و خود اهل سنت هم خیلی رو این حساسه. یعنی مثلا اصلا موضوعات ابن جوزی کتاب اینو مع موضوعات نوشته ایده زیادی زیادیشو بعد از ایشون در کتاب الله و المسموعه اشکال میکنه میگه این حدیث درست سنته اما حکم وضعش نمیکنیم. چون الان زمان ما خیلی رسه شده بقول ما, ما بچه نه مجهول از موضوع اون چیز بود این خیلی مشکلی این آسونی نیست اونایی که بزرگان این شأن را این شریع بی این زودی حکم نمیکنن ممکنه حدیث اصل داره کم و زیاد شده نه مشبلح بوده این به این زودی به مجرد ضعف سند ای ای به این اینناقا مکوله یا اینا ضلیعه ما مکم به وضع نمی کنیمیم خ دقت بکنیم و مخصوصا که این روایات ازش خیلی زیاده ای که بود عه طبقاتش چ که علمه تایید کردن چون هایی که, چو که هم در منجب انصافاً زیاده. و من کلاران هر کردم، گاهی میشه تصف روایات اگر اصفات در کنه که این مطلب جزو متون دینی ماست لاعقل میتونه اصفات بکنه جزو فرهنگ دینی ماست این دو اگر ما با هم دیگه فرض بگذاریم خیلی خوبه یه چیزی رو به نام متون دینی با در نظر دییم که قرآن در روایاته یه چیزی به نام فرهنگ دینی یعنی تلقیهی که بعدها شده خوبتفر یعنی؟ مثلا فرص کنین این روایات ممکنه بلا هستن از ضعیف باشه اما وقتی میبینیم بزرگان اصحاب ما این تلقیه رو قبول کرده، این تلقیه به قبول از اف درجات شرحنگ روز میکنه احرابای درجاتش همونی که میگن عمل مشهور جابر ضعفه اون اف درجات میشه این خوب گرد از درجات ضعیف شروع میشه میاد تا درجات بالا ممکنه یه خبر مجهول باشه اینو ممکن نیستیم فی نفس مجهول باشه اما فخر همین مجهول هم فخر مثلا میخوره ولی کسی جواب مثلا کسی به عمر مثل گفت مثلا نجوم حق گفت بله گفت مثلا یکی جواب گفت بله او بر و الناس به نجوم بود به سیره عمر به زندگی و عمر و مقطع نمیخوره اصلا دروغ هم باشه اما همین راجع به علی نبی قال دیگه میخوره می این دوتا تا باعث فرق میکنه ما الان احادیث داریم که داخلش مشکل داشته باشه مثلا سان انوار اهل بیت مثلا نور از زهرات سالها قبل از، هزاران سال قبل آسمان‌ها در اینا ها وجود داشت خب ببین این روایت تو رو ممکنه شما به لحاظ سندی بگین ضعیف مثلا درسته اما تو فرهنگ شیعه مشکل ایجاد نکرده یعنی به یک شیعه بگین مشکل نداره اما همین روایت شما راجع به عایشه که سنیه میگه خود سنی هم قبول نداره خود سنی هم دیواشنده مثلا میگه لو عایشه قبل سفر سواقات عربی این صلاح ما بهش میگیم فرهنگی خود اونها قبول نمی کردن تا اینو رو عایشه قبل رو ابو بکر چون رو عمر اساساً حادثه است ولی چون اصلا کمتر از این مقامات رو قرار قبول نمی کمتر از این خودشم میگه موضوع اون مشغوله اما اینکه لرمه اونها رو عکس که اینکه متامل بمونن حالا یوهان این مطلب رو خوب دقت فرمایید که گاهی اوقات با ممکن است اوقات قبول نکنید سردر اما زود هم طرحش نکنید این خیلی زود حکم به جعل نکنید حجت تمام نیست با حدیث ضعیف، حجت تمام نمیشه. این یک هم نیست اصولا. مثل کتابی هست الکاش بر حسیف عن منوی به رد عن رمی به ذعف وضع حدیث. کتاب خوبی هم هست، جایی که میگه وازع، ورزا است. چند نفر معذرت بذارید نوشه که نه این آقا ضعیف هست اما ورزا نیست. خوب حجت چون روی رزع خیلی حساسه. بین نزوری حکم به نمی کردن. این نیست که صاف بگن آقا ورزا این اون آقای من بگه شما مثلا دیگه این باطل میمیشه به این سرعت اینه از الان شروع این احادیس هم زحمت کشیده شده شوخی نیست دیگه شما بیمینه 1200 سال 1300 سال از این روایات گذشته چه خوندهی کده شده تا به ما رسیده در, در این تمام شما خیلی حوادثی که 50 سال قبل واقع شده بخواییم نگاه بکنیم خیلی کلمات مستربه چرا رسیم مسابقی که در 1300 سال قبل بوده رایی این احادیث و و جعل و اینها و کد به این صورت و این آسانی نمیشه این هم مطلب دوم مطلب سوم که یک مطلب لطیفی است اصولاً با اینکه در عتب ظاهر این روايات آغاز داره ما اینو در عبارت دیگر یا هم معتبر شدیم و اونجا داری فایده سررش بیشتره دیروز وقتی مثلا از رسول الله نرفتیم که آن منجم را آن منجمو من که سعی کرد، اینی که در روايات احدهای باز بیا تایید بکنه. خب طبیعتا این سوال پیش میاد که پس اون مطلقا دیگه از اصل نفس شد یعنی از زمان هر چیزی که گاهی در روایات اینطوری هست که مثلا میاد یک روایتی رو که از زمان رسول الله به در احادیث یا توقف مختلف بر امام متأخر عرضه میکنند یکی از راهایی که در باب تعارض اگر ما داشته باشیم خیلی نافعه مسئله عرض روایاته خب ما این چند تایفر را روایت دیدیم یک نقطه ای که هست آیا تو اینها روایت عرض داریم یا نه چون مثلا فرض روایت مطلقه بود در خب تحریم نجوم نه آنم نه نجوم از اونها روایت مفاهم نه خوبه خب طبیعی بود از اونها سوال بکنم که شما چی می کنم از پیغمبر این نظر شما چیم ما در این روایت تا اونجایی که ما دیدیم اونی که سریح در عرض باشه حالا تونجایی که من دیدم آنها باز مراجعه بفرم کنیم حق با اونات و از نگاه مهنگ پیدا کردن یه دونش سریح در عرض همون روایتی که هاروم در موسیقی جبر عرض میکنه و قدره ها بیه ان رسول الله و با, با رسول الله انه ها قال اله به اسطلاح زکر القدر فهم سکن ازا زکر نجوم فهم سکن که امام در اونجایی در علاج فهم فهم فی بعد همین دلیل خودتون فرمودن من توجهی که من حالا به همه رو که نگاه کردم این حدیث صریح در روایت هست اینا شما فاعلی کردنم نمیشه خیلی بليده در سال 1980 نمیخواد این تعابیر اسناد و متن اونونتی تعابیر مال اون زمان میه ما از روایت ارزی اینه داریم این خیلی این مطلب اگر باشه این می یک ایک شبههی رو درست بکنه که شاید اصولا شبهت این روایات مال بعد از این من این رو که باز می‌کنه این اصلا شاید بعد از مثلا زمان امام هادی و همون جواد مثلا یک چیزی ضعیف یک چیزی مثلا فرسی اون روایت من صدقه بهادا فقط تلوه علیه رسولا یا علمونتی من بل اون که ما خوندید اصلا این کتاب نفسد و مزاهمه که دیدیس و دوازده هم. این شبهه را غبی... مثلا هیچ چیزی بوده حالا این میکنه که وقتی روایات عرض کم باشه این شبهه را میکنه که اینها مشهور نبوده. این خیلی مهمه اونطور رو قواعد علمی از اون کارا رو رو خیلی دقت من چند بار دارم تو این بحث ها عرض کردم نه ما و نه اهل سنت از رسول الله را جل تعارض نداریم مثلا بگن یا رسول الله حدیث شما متعارض چه کار بگنیم سرنی ندارم ما ندارم ما یه چیزی داریم که مخالف کتاب و سرنه که اونم وضع روشه ندارد ما سرنی هم اما فرصه از امیر و داریم تو هم کتاب سلی که اختلاف حدیث چهار رو اینها این ها شاید شاهد بشه که در زمان خود رسول الله اختلا این به عبارت اخراح اختلاف و تعارض احادیث رسول الله همه اثباتیه تو ثبوت نبوده تو واقع نبوده اما ما از اهمی خودمون داریم مثلا از امام صادق داریم که یه ارکی هم حدیثان مختلف هست یه نقطه هم سابقا ارز کریم کلمه یه تعارض هم فرواد نداریم این استباد بعد اصولی اهل احل سنته مختلف داریم احاده ما یعما ول آخری ها داریم اما حدیثان نداره. بیشتر کلمه اختلاف در خود قرآن هم این لفظ به کار و لو من عند الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. مگر من در غیرش؟ کلمه تعارض رو ما در روایت نداریم الا در مرفوع زراره که خیلی درجه ضعیف ما در نبی جمهور رفع تو اون داره حدیثه متعارضه اون تنها رواید که لفظ تعارض توش داره ما کلا تو احادیث خود اون لفظ تاروز نداریم مرزه مرزه نداره توش این رواید مرسده یکی مرفوع همون مقبوله از این اشتباه کرده نداره اون. همون مقبوله عمر مهندلت اشتباه داره غلق قلوب داره این همون مقبوله تو خود مقبوله نداره متعارضان نداره تعبیر متعارضان در روایات ما منحصره در م مختلفان داریم یکی که انكم احادیث حدیثان هر دو وایع مر براخره اینا هم جایی اما متعارضان نداریم حالا به هر حال از اینکه در روایت مثلا از امام سجاد نداریم خیلی عجیبه مثلا به امام سجاد ارجعه شما رو از امام صادق داری این کاملا نشون میده که تعارض در حقیقت در زمانشی از زمان امام صادق شروع میشه از امام صادق داری از, از امام صادق نداریم البته در بین اصحاب ما هم تعلیفاتشون در تاروز از زمان موسعب جرفه به بعده از زمان ماموسادق روایاتش هم اما تعلیف نشده به عنوان کتاب قدیدیت این کتاب های ما در حدیث مطارده از زمان از اصحاب موسعب جرفه به بعده نه اصحاب ماموسادق حالا این شان بحثاش این متفرقه بود وقت این یک چیز عجیبی نباشه شد براتون نقطه عجیب عرض اینجا نداریم. علت مزامیر اعشار توش باشه مثلا میگه من به ذات کردم من نجوم خیلی علاقه دارم مزره به دین من هست یا نه ببینید مزره به دین شو مثلا در ذهنشون اون مطلقات بوده که نجوم مزره و الا تاثیر شده باشه قلت له قال رسول الله ادبم نه قبول نداره این مطلب قبول نداری به این تعبیر ما نداریم. البته در این عبارت نهج علاقه در اون مخمئی که داشتیم از فلسفه حواسنیل سنت رسول الله پیش داره اما تو بقیه مطمول سمیت رسولات اونجا نداره این یک بحث اجمالی راجع به مجموعه روایات و دست بندی که در اینجا شده و اما روایات از است که به اصطلاح میاد متعرض میشه مثلا به امام, به امام موسف جنفر یکی از پدر شما مثلا از امام صادق همچنواتی رزیده چه کار بکنید بعد امام بفرماید که نه مثلا به این که امام بفرماید که خیر مثلا این روایات درست نیست این اقتلاحا ما اسمیم میشیم روایات ارض من سابقا چون یک توضیح دامان اینجا چون خیلی محل شاهد نیست یه نزیه جاهایی که خیلی روایات ارض اثر داره انشاءالله من در اونجا متعرض میشم روایت ارض بیشتر به طول از امام موسی جعفر و از به اصطلاح حضرت رضا و عیمه متأخر ماست یعنی بیشترین قسمت از روایات ارض از ائمه متأخر ما رسیده سلام الله علیه مجمعین روایت و اینا یکی ارزش خاصی پیدا میکنه روایت ارضی که ما در کلمات امام صادق و امام باقر دارید بیشتر عرض روایت رسول اللهه فعنه هم رواهن رسول الله از امام صادق هم داریم یک مقداری اهل به اصطلاح اهل کوفه روایاتی از علی بن نقل می‌کردن که درست نبوده اینها به اصطلاح یک مقدار روایت عرض تو ایناست که امام صادق گفتن که رو و علی حذف اما بیشتر روایات از خود امام صادق هم دارین که مثلا فلانی اومد اینجوری میگه شما اینطور نمیدین اینو عرض نیست امام قبول نمی‌کنن اما روایات عرض رو ما بیشتر از امی متأخر داریم و این یک خواهد خیلی مهم چون در کلمات اصحاب ما نعمده خیلی شرک شلانیه و اگر ما روایات عرض رو قبول بکنیم با یک عرض عریضی در حقیقت اینا آمدن گفتن به اینکه مثلا اگر قدمای اصحاب یک عرض ضعیق عمل کرده، اون قابل اعتماده ما به نظر خود ما اون شرح فنیش اینجور دادیه بیشم چون تا حالا گفتنش خیلی طولانیه شرح فنیش اینجوری این احتمال طبیل داره که مثلا اصحاب حضرت حادی حسکری صلی اللہ علیه یا از جواب مطرح کردن حضرت اون روایاتو رو ترم کردن ولو روایت اصحاب نبی امایون هست از یکی از مسادر اصحاب از اصحاب ما اینما علیه مصاب ترم لذا علماء ما اون روایت نی آوردن و این علامتش چیه؟ علامتش اینه که مثلا اون روایت واقفی ها آوردن معتبره کتاب خیلی زرافت داره این خیلی با... یفتحابی مثلا افواق مهمه سندشی که نگاه میکنین روایت مال واقفی هاست مثل اومید ابن زیاد به کتاب ابن عوی اومید میرسه لیکن اصحاب رو عمل نکردن ما اونجا احتمال دهیم که نه از روایت عرضه یعنی به امام حادی یا امام جواد مثلا رو حرض کردن. کردن این روایت مثلا یک مقتی داره بهش عمل نشده. اون وقت چون واضفی ها به امام جواد امام حادی بر نمی مجبور مجموع به کتب برگردن سر این که الان ما روایاتی داریم از واضفی ها که از کتب مهم از خواب خود ما از به کوتوب ابن ابي امير خطوب اثر محبوبه اصحابم به عمل نکرده شنیدن هم معتبره لكن شاذه سرش در حقیقت که از مکاتش به نظر ما اینه و از همین جا هم سر یک مقدار از فتاوای شاذه که حتی از بزرگا مرهم استاد من استاد. هم اصلا فن بعد معتبره شنیدن ولو اعتراض کنه اعتراض اصحاب مشکل درست نمیکنه عمل کردن بهش این تحلیل تاریخیش این بود در حقیقت این روایت عرض شده برای علمه اون تخکر اون ارز به ما نرسیده خود اخر اون ارز به ما نرسیده چی به ما رسیده؟ از اصحاب چون داریم نگاه بکنیم این روایت رو یک واقعی، خود اخر واقعی واقفی سقه نرموز از دار نبی اومد چطور میشه اصحاب ما اول بشن کنند چرا واقفی بهش عمل کرده؟ چون واقفی به ما معاصر مراجعه نمی کردی؟ اختلاف ما با اونها ما یه بحثی هم مطرح کردیم که حالا مطرح نشده از تو خب نصفم اصفادش هم مشکله ما احتمال قبیل روزیم برای اولین بار اصطلاح و اصول اینه در حقیقت واقفی ها در آورده باشن سر این اصطلاح و اصول لهو اصلو این در حقیقت برمیگرده به واقفی ها افرادی مثل حامید دیزینیزیاد و مشایخ حده نزیاد اینها در حقیقت قبل از حامید زیزیادی در از مشایخش در حقیقت اینها کلبه اصل و ترویج دادن. مشاید از شاع المندله مردموم خیلی کم توصیف کتاب به اصلی کرده. خیلی کلپ هم پیش را بیشتر نکردند. بیشتر این کتاب های ما وقرون هفت می شدی در روات ش ها فررس ش ها درها نظریه خیلی کم فوق العاده کم شاید که از علمش این باشه در هر حال شدین بحثا بحثا طولانی است البته فوق العاده مفیدم به مقداری که نافع باشه از کلام و تطبیقات زیاد میخواد این شاء الله بگذاریم در جریان بحث این شاء قرار بگیرینه که در جای خودش ان این شاء روایاتی بیاد که خیلی محل اختلاس و اونجا این از زارد مشکل کار ما در روايات وجود از عهد انتقال نصوص به فتابا خیلی این روایت منعکس نشده این هم چرا چون ما الان عهد نصوص رو خوندید. نصوص خالی از تعارض نیست ابهام داره انصافه و اما عهد انتقال عادتا عهد انتقال در روایت شیعه از کتاب مثل فقه و رضا شده چند دفعه از کردم ما یک انتقال از نصوص به فتابا داریم شراره هم هر کدوم از مختصات ما اهل سنت رو ندارن هیچ کدوم از اهل سنت این منبعی از مذهبی از اهل سنت زیدی‌ها هیچ کدومشون ندارن فقط ما شیعه داریم هستیم خوب دقت بکنیم ما فقط کارمون این نیست که رسوس سر بکنی بعد خطبا چون ما موضوعی هم خود کتابشون ببین چون خطباای قدما میارن ما اضافی بر آوردن خطبا سعیمون اینه که اون رو به رسوس راست بدیم این برای ما مهمه چون وقتی النصوص مختلف شدن از تفاوا ممکن صحت یک تایزه در بیاریم مثلا در یک مسئله دو فائده دارید شیخ صدوق در تغید یک فائشه آورده اشاره کرد یا در مغنه یا در تقو این بحث سر اثر خطوانی اشاره از این که این روایت این نسخه درست اون یکی نادرست که این به درد کار اونی که به درد کار ما میخوری این قسمته که آیا مثلا در انتقال خوب روشن شد از اهل نصوص به اهد روایات فوقاهای خودمای ما چه کار کردن این سؤال مثلا یک تایفه مطلقات بود یک طایفه اون که اگه مثلا به کار بردن اصطلاح نجوم زهره چیه پلان چیه در خود نجوم هم اینطوره زهر ستاره های بارده جزو نجوم بارد و از نهست تو رواید که آه درست شما بی این نه هستید این نجوم میکنید این به ظاهرش حرف بنا یعنی یک اده اصطلاحات از زمان خود همیون هست در بعد از اون که با اون دهبان داره حضرت شروع فرم نم مقصاله به نجوم رو گفته هم این رو بگیریم تا ایمه مترخت یه طایفه اینجور داریم یه طایفه مطلق دارید. این سوال اینه که این انتقال تو مثل کتاب فرسیل مثل من با مثال فبورزا می آماده. در کتاب کلینی هم ارز کردیم کل در روایاتی که در مورد نجومه تو روزه عمرده ایش هم خیلی عجیبه حالا ما یواش شواش بخیلی وارد بحث تتاوا بشیم که اصحاب ما چه کاری هم و مثل از روایات ما هم بوده احتمال این عرضه تعبیر مثلا بنی نوبخ در اون روایات که نعمل کرده ایشون ها بود به حضار که ما مثلا بنی نوبخ نجور بیم نجور میده کش خواهر هستن به قدیم بودن و عالم و فلک و ملک و نما و دیگه نجور میگم عرضی باشه احتمالا که اینجور معروف است که مثلا اینجور خوب نیست بعد ما مثلا اشکال نبه مالم یک روش تا مادام به عقاید شما ضرور نرسونه خود اینا فی نفسه مشکل نداره. علم دیگه برای این به عنوان مشکل خاصی نداره مگر اینکه که توحید باشه اون بحث است. که درست نیست و باطله یه حاله ما نیامدید در مجموعه روایت خودمون این رو در مجموعه فتاها و ازوال از ها اکاس این روایت رو ببینیم این هست این مشکل در مدام حالا این مشکل اجازم احس کردم که یه وارد عبارت بشین طبعا اختزار میکنه که ما اینجا از اشارم کردم. کتاب مثل فغورزا که اول کتاب کافی بعد کتاب فقیر و بعد شیخ مفید به ترتیب که تأثیر داره شیخ توسی سیده مرتضا میاد تا به جلو. الان من یه مقضاری از قائده خارج میشم با علم خودم رو خورجه از چون به خاطر که بحث تازه است و مر مرجسیره دونولا صلا عليك مقدار زیادی از کلمات سید مرتضی و سید سیدن طاووس رو در کتاب به اصطلاح خرجو نمودم من یه نکته دیگه هم با زیادم رفته بود یه کتابی اینجا بود نزهت الاوام و بوستان کرام که به نسبت به مرحوم به حساب سید مرتضی ابن دایی اینم من اینجا اینجور گفتارت که ما علی سید مرتضی ابن دایی این اشتباه بود یاد روز که اشتباه این اشتباه هم منشأش برام واضح بود ما با تصادف عوام ایشان به جلد 2 یا 3 ظریعه کردیم ایشون نسبت داده به سید به اصطلاح بزرگوار سید مرتضی پسر ابن دایی در کنز در بعدی این نزحت کرام در این کتاب صفحه 252 شنیدیم شه محمد ابن الحسین رحمت تراوی یا رازی در گاردینده بیشتر خار که متعرض خود کتاب نشد خدا فرمان آموز ما در اونجا اشتباه کردیم واسه خدای حاضر جهان هم اشتباه کرد ما اشتباه گفتیم تو بحث اسلام خدا آموز بود بله ما اونجا اشتباه گفتیم نه تفاصيل امام مال اون سید مرتضیه نه این کتابی این مال شخص دیگه‌یه الان به هر حال این اشتباه اونجا گفتیم منبعش من هم مرهم آموز بود بعدم خود ایشون بازگشت فرضنا اشتباه کردیم حالا به هر حال این اینم یک نکته بود که گفتم روز استدراک می‌کنیم اشتباه از سابقه بود اون اینجا علا خلاف قاعده چون هستم قاعده اختلاقه که موقع فرطور تاریخی چون مرمون بهار زیاد از سید مونتابوس مرت... نهار کرده و بعدا سید تابوس مصقه که به اینا اشکال نداره توجیهات فرابانی داره من یه مقداری چون به اصطلاح میخونم از طرفه ی دیویست هست یه مرداری ایشون کرده که از کلمات سید مرتضا رو ایشون بیاره خیلی زیاده یعنی کلمات سید مرتضا سید, سید راوز رحمه الله بسیار زیاده اگر بخواهم بخونیم که دیگه وقت ما اجوازی بگوشیم از یه روز تا این بخونیم بله جلد تحقیه از صفحه 298 تا صفحه بله بعد 307 اول 308 بعد این تا معرب توی ارادم این کلام سید دو ده بعد ده صفحه ایشون کلمات سیدم طاووس خود ایشون در صفحهی 308 فرمانه اقول بعد به ایشان رد کرده به سیدم طاووس رد کرده سیدم طاووس از سر بودم از سر فرمان چه شوتیا بویشام میکنه یه بسیل جریدی علی بن تاوس لغن سر خلیل به بهاد العلم چون خیلی آشنا بود تا اینکه یه اداست داره و بالغ فی انکار الا من اعتقد هن النجومه واش اراده و فاعل و موثره و استدل علی الالحک به دلائل کثیره بعدش هم رد بر سید مرتضیه که چون بر سید مرتضیه آورده و آورده که اون مطلب درست نیست و و زهد الى انه من الالوم المضاهات و ان نجوم علامات و دلالاتن على الحادثات لكن خداوند متعال ممکن عجزش و وجب از تعلیم علم النجوم و شو از حرام تعلق و نظر فيه بل عمل به ادرال بی اثر انده موثراتون سر که اخبار نهی رو بر اون ثم نکره لتایید صحت هذا حالا این اسماء جماعت نشیه یه بحث کلام سر تاوس بزرگانی که ایشون ورده شو یکیش میشه جماعت من بنی اول شروع کنه اسماء رو آورده و من اولمای مناظیر نشیعه احمد بن محمد بن خالد بن برگی ذکر ابن نجاشیفی کتبی کتاب, من کتاب نجوم. حالا می‌دونیم که کتاب نجوم داشت این ایل باشه. و دیگه هم احمد بن محمد بن تلحه عدد نجاشی نجاشیفی کتبی کتاب نجوم. و شیخ و نجاشی که اندهو تصنیم هم فه نجوم و بعد هم در مرکوری جلودی بخری علی ابن محمد عدوی از شمشافی که از سومنی هست فه اندهو زکر ابن نجاشی رس... لسات هم فی ابتال احکام نجوم خدا رحمت که سیدم رزیو چطور اینقدر به اصطلاح بله این تاته نمشیم آقا کتاب رد برمانجیمی نمشید بعد ایشون قدس مهن بعد ابن عبی عمر بعد محمد ابن مسعود بله بعد چند از آقایان بزرگان بله اهل از نوبختی ها بله اینقدر یه باشد الله ایشون بعد ایشان یک عده از معاصرین ایشون خیلی زیادن یعنی واقعا. حالا با ایشان تعبیر ما از ایشان که چطور ایشون در مثلا ایشون برداشتن این بزرگی ای افرادی رو اسمان داری این هم بزرگیشون محل کلام میکنه این از این شیعه هستن یا نه برنه. مثلا این دو تا وزیر معروفه معمون که حسن ابن سهلست و حسن ابن سهل که معروفه اصلا به مخالفتشون و احل بید اینا از شیعه نوشته در این سبیل صفیل منصوبی بیشه حسن ابن سهل بعد البته این که معروفه فضل ابن سهل معروفه که ایشون بعد از علمای نجوم این معروفه بعد پوران دختر حسن ابن سهل نوشته که زن معمون شد و معمون خرج سنگیری برای عروضی که اینی واقعا خیلی عجیبه حد قسمت مثلا برسه به فضل ابن سهلو حسب ابن سهل و بعد فوران (نجوم). و بعد فوران وthought و بزرگان مثلا وthought (The بودن is a bit muffled, but the words و بعد فوران وthought thought The audio is: ابن سهل و بعد فوران وthought thought The transcription is: "حسب ابن سهل و بعد فوران وthought thought I will provide the ابن سهل و بعد اگر نه حیون در جاهشیه خب ایشون توجه نکرده که نجاشیه کلا اسم ایشون نیورده بله بعد به منذکر به منزهره من ال عمل الا النجوم اصلا معروفا خط نموسن جدا دست برامشه اون یعنی واقعا بله یک چیز عجیبه وقتی نگاه میکنه بنو بله ملوک مشهوری به علم نجوم تقریبا علی المعمون اسم مامون بعد بله ایشون یک لیستی رو میگه من یه حسی نخوندم واقعا برای ما چی میگه مثلا متهیریم واقعا سید ام چه کار کرده با این بزرگواری که ایشون میگن تشرف هم داشته خیلی مسائل معنوی هم داشته چطور شد من نخوندم باقولا که سید بر مناسبه گفت من درسو کوزری بودم خودت که تو خودت چه واقعا چیز عجیبی یعنی واقعا تعیید میکنه انسان که ایشون برداشتن یک مقدار اسماء رو به این ترتیب پشت سرهم هم آوردن بیگه مثل مهمون و پسر پسر سندی ابن شاهک محروف و... البته او را بزرگوالی فرمانه بردن لنه لن علم مذهبه بود این پسر سندی ابن شاهک چی و هر حال انصافم این برداشت چیه رو که داشتن بسیار عجیب و غریبه و تازه الان تدبیرین که این مطلب ایشان هم درست باشه همون روش اخباری یه روایت دن که ابن عبیمون کنتا خبیرم با حضر این برداشتان آوردن این روش کلا مورد قبول نیست اینجا این مطلب و بعضی خواهد مطلبه فردا انشالله فعلا دیگه شروع میکنیم عبارات اصحاب رو که برخوردشون با این روایت جور بوده